به نام خدای یگانه مهربان سلام میگن افسانهها ها و قصه ها خواب رنگین آدمی که در طول زندگی مردم دستخوش تغییر و تحول شدن بنابراین افسانی که امروز نقل میشه مثل افسانه های دیروز نیست نقل و افسانه وسیله ارتباط گذشته به آیندن افسانی از مردمان سرزمین فارس براتون نقل میکنم به نام افثانی آفتابه لگن و انگوشتری برگرفت از کتاب قصه‌های مردم فارس به گردآوری ابو القاسم فقیری روزگاری سلطانی حکومت می کرد که بسیار اهل گردش و گشت و گذار بود روزی که برای گردش و هواخوری از شهر بیرون رفته بود به چادری در دامنگ کوه رسید سلطان کنجکاف شد که ببینه داخل این سیاه چادر کی زندگی میکنه. بنابراین جلو رفت و پیرمردی رو دید زار و نحیف که مشغول عبادته پیر مرد دو رکعت نماز خوند. بعد صورتش رو به درف انتهایی چادر برگردند و گفت ها یا نه؟ جواب شنید نه. پیرمرد دو رکعت دیگه نماز خوند. باز گفت ها یا نه؟ جواب شنید نه. دو رکعت دیگه نماز خوند. باز گفت ها, ها یا نه؟ جواب شنید ها ها پیر مرد گل از گلش شکفت، خوشحال از سیاچادور بیرون اومد، به پای اسب سلطان افتاد و گفت قربان، از اینکه شما رو بیرون نگه داشتم عذر میخوام، نیتی کرده بودم، داشتم نماز بخوندم سلطان پرسید، بگو ببینم معنی ها یا نه تو چی بود؟ پیر مرد گفت، قبله یالم، زنم در حال وزه هم بود، نیت کردم نماز بخونم، اگه در دو رکعت اول بچم به دنیا بیاد آدم معمولی بشه اگه در دو رکعت دوم به دنیا بیاد وزیر بشه و هم نشین با بزرگان و اگه در رکعت سوم چشم به دنیا باز کنه بچم سلطان بشه که از نیت خیر شما قربان، بچم سلطان میشه سلطان از گفته پیرمر تعجب کرد از اون خدا حافظی کرد و به قصرش برگشت. از غذای روزگار زن سلطان هم باردار بود و وقتی سلطان به قصر رسید به اون اطلاع دادن که همسرش در حال وضع حمله سلطان یاد حرف پیرمرد افتاد اونم نیت کرد و شروع به خوندن نماس کرد در درکت دوم بود که پسرش به دنیا آمد اینجا بود که سلطان گفت پسر پیرمرد مرد زهرانشین سلطان بشه؟ اون وقت پسر من وزیر بشه؟ و برای اینکه بفهمه گفته پیرمرد پیر مرد حقیقت پیدا میکنه یا نه دستور داد پیرمرد رو با زن و بچش به شهر بیارن و هر دو نوزادان رو به دست دایهی سپردند کم کم بچه ها بزرگ شدن تا اینکه اونها رو به مکتبونه گذاشتن اسم پسر پیرمرد فتو الله بود و اسم پسر سلطان احمد. یه روزی سلطان از فتالله یا همون پسر پیرمرد پرسید چی میخونی؟ فتو الله جواب داد قرآن رو خطف کردم حالا کتابهای دیگه‌ای میخونم. بعد سلطان همین سال رو از پسر خودش یعنی احمد پرسید احمد گفت دو جزء اول قرآن رو میخونم سلطان از شنیدن این پاسخ عصبانی شد و ملای مکتب رو احضار کرد و علت رو پرسید ملا گفت قربان گناهی متوجه من نیست هوش و زکاوت فت الله از احمد بیشتره سلطان حرفی برای گفتن نداشت ولی از این موضوع خیلی ناراحت شد و به فکر چند سالی گذشت تا اینکه که روزی الله و احمد سر موضوعی با هم درگیر شدند و فتولاه با مشت به صورت احمد کبید و خون از صورت احمد جاری شد سلطان که این ماجرا رو شنید دستور داد جلاد سر استن فتو الله جدا کنه وقتی جلاد خواست سر فتو الله رو از تن جدا کنه یه دفعه فتو شروع کرد به خندیدن حالا نخند کی بخند جلاد تعجب کرد و علت خندیدن اون رو پرسید فتو الله گفت آه من میدونم تو خواهان دختر وزیری اگه من نکوشی کاری میکنم که به وسال دختر وزیر برسی جلاد مات و متحیر موند چون کسی از این راز اون اطلاعی نداشت بنابراین با خودش گفت آه به یقین از دست این جوون در آیند کارهایی ساخت است و هر یعنی نه در چنین موقعی این حرف رو به زبون نمی آورد بعد اونو رها کرد و گفت هرچه چه بادا باد آباد. از این ماجرا مدت ها گذشت تا اینکه روزی احمد پسر سلطان دلش هوای فتو رو کرد نزد پدرش رفت و گفت پدر خیلی دلم میخواد فتو الله رو ببینم سلطان که به بنبسط رسیده بود از وزیرانش خواست که به هر نحوی شده احمد رو از خیال دیدن فتو منصرف کنند اونا بعد از مشفرت با هم به این نتیجه رسیدند که بهترین راه اینی که احمد رو به گردش ببرند. سلطان این پیشنهاد رو پذیرفت و وزیران به اتفاق شاهزاده احمد به قصد گردش از شهر بیرون رفتند تا کنار ای رسیدند. احمد برای شنا به داخل آب رفت و رفتی از آب بیرون اومد فوراً به خیمگاه رفت تا کمی استراحت کنه. در این موقع دختری زیبا و باوقار به خیمه اون نزدیک شد و از اون نشونی جایی رو پرسید احمد با دیدن دختر محو زیبای اون شد و از هوش رفت دختر هم وقتی اینچون این دید یه دست آفتابه، لگن و یه انگشتری بالای سر احمد گذاشت و از اونجا دور شد در درباریان سلطان به سراغ شاهزاده احمد رفتن دیدن که احمد بیهوش افتاده و یه دست آفتابه لگن و یه انگشتری بالای سرش گذاشته شده همگی تعجب میکردند که یعنی این از کجا اومده کی اونا رو اینجا گذاشته چرا شاهزاده بیهوش شده چند دقیقه بعد احمد بهوش اومد و چیزی از این ماجرا به خاطرش نمی اومد. وقتی به قصد برگشتند درباریان سلطان رو در جریان ماجرا قرار دادن. سلطان هم دستور داد تمام دانشمندا و حکیمای شهر رو به قصد دعوت کنند تا بلکه کسی راز این آفتابه و لگن و انگشتری رو پیدا کنه و دریابه. خلاصه همه با هم مشورت کردن ولی کاری از پیش نبردن و نتونستن این راز رو کش کنن. در این موقع همون ملا که به الله و احمد درس میداد گفت ای اگه فتولاه زنده بود با اون هوش و زکاوتی که داشت من میتونست راز آفتابه و لگن و انگشتری رو کش کنم. ای، ایف که اون دیگه در این دنیا نیست در این موقع بود که سلطان باز به فکر فتولاه افتاد و با خودش گفت شاید جلاد فت الله رو نکشته باشه بنابراین فورا دستور داد جلاد رو احضار کنن در عرض چند دقیقه جلاد به نزد سلطان اومد در حالی که ترس تمام وجودش رو در بر گرفته بود و میلرزید سلطان گفت در امانی بگو بگو آیا تو واقعا فتحاله رو گردن زدی جلاد لرزان امان خواست و گفت سلطان به سلامت باید این جسارت رو بر من ببخشید الله زنده است سلطان دستور داد فتالله رو پیدا کنن و به قصر بیارن جارچی ها در شهر جار زدن و خیلی زود فتالله پیدا شد سلطان رو به اون کرد و گفت من از تو کاری میخوام تو باید رازی رو کش کنی در اینجا الله به یاد جلاد افتاد و گفت قربان اول دختر وزیر رو به عقد جلاد در بیارید بعد من در خدمت شما هستم در عرض چند ساعت دختر وزیر به دستور سلطان به عقد جلاد درآمد. بعد فتولاه گفت خب، من باید چه رازی رو کش کنم سلطان تمام ماجرا رو برای الله تعریف کرد الله فکری کرد و گفت معنی لگن اینه که شهری وجود داره به نام لگن معنی آفتاب اینه که پادشاه سرزمین لگن دختری داره به نام آفتاب و انگشتری هم قاصد بین راهه بله اینه سلطان با خوشحالی گفت آفرین بر هوش و ذکاوت تو آیا میتونی آفتاب رو پیدا کنی الله با قاطعیت تمام گفت البته که میتونم به بعد ده سوار زبده آماده شدند تا به همراق الله و احمد به سرزمین لگن برند اونا رفتند و رفتند و رفتند تا به شهر لگن رسیدند و در کاروان سرایی منزل گرفتند بل یون روز فتو و احمد به نزدیکی قصر دختر پادشاه رفتند و در اون نزدیکی خونه ای رو پیدا کردند که متعلق به پیرزنی تنها بود فتو الله انگشتر رو به پیرزن داد و گفت مادر من و این رفیقم تاجریم از غافل عقب موندیم و همکاروانیامون رو گم کردیم خواهش میکنیم این انگشتری رو نزد شاهزاده خانم ببرید و به اون بفروشید چون این انگشتری تنها زیبنده ی دست شاهزاده خانم بود بس پیرزن که دل مهربونی داشت قبول کرد و پرسید اگه شاهزاده خانم قیمت این انگشتری رو پرسید چی بگم فتوح گفت بگو فقط صد تومان خلاصه پیرزن انگشتری رو نزد شاهزاده خانم افتاد برد شاهزاده خانم انگشتری رو شناخت و گفت این انگوشتری رو چند می فرشی. پیرزن گفت فقط صد تومان البته قابل شما رو نداره شاهزاده خانم که یک دفعه فریاد شاهزاده خانم بلند شد های اون ترکه رو از باغ به بیارین پیرزن بیچاره با شنیدن این حرف در عرض چند دقیقه از غصر فرار کرد و به خونش اومد و به الله گفت سرجان فکر میکنم قیمت انگشتری گرون بود چون تا گفتم فقط صد تومان شاهزاد خانوم میخواست با ترکه از باغ به کته جمع بزنه فتالله خندید و به احمد گفت <تصفيق> میدونی معنی باغ به اینه که امشب به باغ به بیاین و بعد باغ به رو پیدا کردند و شبنگام به باغ رفتند اونجا بود که دیدن شاهزاده خانم آفتاب به همراه چند کنیز به انتظارشون ایستادن فتوالله فورا احمد رو جلو فرستاد و خودش گوشه‌ای پنهان شد احمد تا چشمش به شاهزاده خانم آفتاب افتاد بیهوش نقش زمین شد شاهزاده خانم تک نونی در دست احمد گذاشت و به همراه کنیزش رفت وقتی که سر سررسید احمد رو بیهوش نقشه بر زمین دید آبی به صورتون زد و احمد کم کم بهوش اومد و تکنون رو به فتولاه نشون داد الله با دیدن تکنون گفت آه معنی این تکنون اینه که تو هنوز بچه ای تو رو چه به اشغاشه خلاصه چند روزی گذشت و این بار از پیرزن خواست انگشتری رو به قیمت پنجاه تومان به شاهزاده خانم آفتاب بفروشه این بار هم پیرزن به قصر رفت و وقتی قیمت انگشتری رو به شاهزاده خانم گفت یک دفعه شاهزاده خانم فریاد زد آهای ترکه باغ انار رو بیارین و پیرزن این بار هم سراسیمه فرار کرد و به خونه برگشت فتو گفت خو. معنی این حرف شاهزاده خانم اینی که امشب به باغ انار بریم و شب به باغ اناری رفتن و این بار هم احمد با دیدن شاهزاده خانم آفتاب بیهوش نقش برزمین شد و شاهزاده خانم تیلهای در کنار اون گذاشت و رفت. فتح هم گفت که معنای این تیله اینه که تو را چیکار به عشق بهتر بری تیله بازی. بر احمد و فتو یک بار دیگه پیرزن رو راضی کردند برای فروش انگوشتری به نزد شاهزاده خانم بره و این بار انگشتری رو به قیمت هزار تومان بفروشه شاهزاده خانم این دفعه تا قیمت انگشتری رو شنید گفت بیارین اون ترکه باغ لیمو رو خلاصه احمد و فتو الله این بار به باغ لیمو رفتن و این بار هم کاری از پیش نبردن و شاهزاده خانم چاغویی در کنار احمد که بیهوش شده بود گذاشت و رفت. چاغویی که به قول الله به معنی این بود که اگه دفعه دیگه اومدی سرت رو میبرم احمد که نومید نشده بود با ناراحتی گفت: "اوه، دیگه باید عمری در حسرت شاهزاده خانم آفتاب قصه بخورم." ای کاش, ای کاش راه حلی پیدا کردیم فتوله فکری کرد و فوراً سر و صورتش رو صفایی داد و خودش رو به شکل تازه عروسی در آورد. لباس زنانه پوشید و همراه با دوستان سوار اسب شدن و روانه کوچه و بازار. از اون طرف به پادشاه خبر دادن که تعدادی سوار وارد شهر شدن. به دستور پادشاه جلوی اونا رو گرفتن که شما کی هستیم؟ دوستید یا دشمن؟ احمد، همونطوری که الله نقشه کشیده بود و اون بایستی عمل میکرد گفت ما دوستیم یه نفر زندانی داشتیم در حوالی این شهر از دست ما فرار کرد چون عروسم رو به همراه دارم امشب رو از اون نگهداری کنید تا فراری رو پیدا کنم صبح زود میام و عروسم رو ورمیدارم و میرم خلاصه عروس خانم که همون الله باشه به دست خانوادی پادشاه سپرده شده شد عروس یا همون فتولا به خانوادی پادشاه گفت اگه میشه دستور بدین آب همون رو گرم کنن میخوام همون کنم شاهزاد خانم آفتاب گفت البته الان آب گرم رو حاضر میکنن بله فتولا یا همون عروس لباساش رو توی چاهک انداخت و مقداری از اونا رو هم لب چاهک گذاشت خودش هم گوشی پنهون شد که فکر کنن اون توی چاهک افتاده. هنوز چند ساعتی نکزشته بود که تمام قصر فهمیدن که عروس یا همون فتالله افسانی ما توی چاه افتاده. سر و صدا بلند شد. فتالله هم در فرصتی مناسب خودش رو به خارج از قصر رسوند و به دوستانش پیوست حالا خونواده پادشاه مونده بودن که اگه سواران اومدن و سراغ عروسشون رو گرفتن اونا چه جوابی باید بدن؟ صبح زود احمد تبل نقشه قبلی به قصر اومد تا عروسش رو با خودش ببره اهالی قصر کم کم موضوع افتادن عروس رو توی چاهک گفتن و احمد خودش رو ناراحتشون داد و گفت من این چیزا سرم نمیشه من زنم رو میخوام اگه بدونین ما چقدر به هم وابسته بودیم و هم دیگر رو دوست داشتیم پادشاه که این وضعیت رو دید گفت ما نمیخواستیم این حادثگی ناگوار برای عروستون پیش بیاد حالا در عوض حاضریم شاهزاده خانم آفتاب رو به عقدت در بیاریم. احمد که این رو از خدا میخواست گل از گل شکفت و هفت شبال روز ساز و نقاره زدن و احمد به مراد دلش رسید وقتی احمد و شاهزاده خانم و الله به سرزمین خودشون برگشتن و سلطان وقتی رو، از زبون فت الله شنید بر عقل و دانایون آفرین گفت و تاج پادشاهی رو بر سر فت الله گفت حقا که لیاقت سلطنت رو داری خلاصه فت الله پادشاه شد و احمد وزیر و بدین ترتیب حرف پیرمرد سهرانشین درست از اب در اومد و پسرش سلطان شد افسانه آفتاب آفتابه، لگن و انگوشتری رو از مردمان سرزمین فارس براتون نقل کردم. گرفته از کتاب قصه های مردم فارس به گردآوری ابوالقاسم فقیری. افسانه ها مرهم درد های بشرند و برای همینی که مردم اونا رو به وجود آوردن. افسانه ها برای این خرد شدن که بونا گوش بدی اونا رو بخونی و بعد خودت رو برای ساعتی فراموش کنی. رها، در دنیا و یه رنگین خیال هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار بحار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار احمد احمدی کهی کننده زهرا عبدالله زاده افثانی دیگر بدرود